بَأَنَّ رَبَّكَ أُوحَى لَهَا يَوْمَ إِذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَجْتَاءَ الْيُرَوُ أَعْمَالُهُمْ فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى و می‌یعمل مثقال ذرة شری را در سوره مبارکه بیینه بر و بر اناد کفار و مشرکین زجر بود عتاب بود سرزنش بود که چرا اونها ایناد می ایمان نمیآورند حال در سوره زلزال الله تعالی بر این اناد تخویف اخروی بیان می که کسانی که به اناد گرفتار هستند از عذاب آخرت بترسند برای آنها در آخرت عذاب سختی هست. الله آغاز می‌فرماید با زلزله‌ای که با اون زلزله آخرت و یوم قیامت روز قیامت آغاز میشه. اذا زلزلت الارض و زلزالها وقتی که زلزله داده میشه، تکان داده میشه زمین، زلزالها زلزله و تکان آن. وقتی که این زلزل اتفاق میفته این تکان داده میشه و اخرجت الارض و اثقالها زمین بیرون میکنه تمام بارها یشرا منظور از اثقالها امواتها هست در زمین چی هستند تو شکم زمین چه باری هست؟ تو شکم زمین چی چیزی مخفیه؟ اموات انسان هایی که اونجا هستند و دفن هستند وقتی که اون زلزله اتفاق بیفته اون وقت زمین خارج میکند این چه زمانی هست؟ به وقت نفخه ثانیه است و انسان وقتی که بیرون می افته و زنده میشه تحت تعجب میکند متحیر است و و قال الانسان ما لها انسان میگه چی شده این زمین چرا ما رماره بیرون انداخت، چه اتفاقی غرارست است افتی، اللهمی فرماد، یوم ایذن تحدث اخبارها، در اون روز سخن میگوید از اخبار خودش زمین میگه که جلیان چیه به ان ربک او حالها میگوید سبب اینکه رب و را، الهام کرده به او وحی کرده رب بی او دستور داد رب گفته که من این کار را بکنم رب گفته که این مرده ها را بیرون بندازم یوم اذین یصدر الناس اشतात لیروا اعمالهم آن روز برمی‌گردد مردم جماعت جماعت گروه گروه دست, دست دست اشتا یعنی متفرق جدا از هم لیوراو اعمالهم تاکب ببینند جزای اعمالشان را هر یکی میاد پرندش را میخاند، هر یکی تکلیفش را که تکلیفش انجام روشن شده میبیند، فمی عمل مثقال ذرت خیری یارا هر کسی به اندازه یک ذره خیری انجام داده میبیند، ببین مسقال یک واحده اندازگیری هست وزنی هست ولی اینجا به معنای اندازه هست چون ذره بعد از مسقال هست به اندازه ذره ذره خیلی کم را میگه اصل ذره این مورچه کچلوی را میگن که روی زمین را میره هر جا شیرینی شکری چیزی باشه جمع میشه خیلی ریز و کوچه که لذا ذره را که ذره میگوین به اون مورچه تشمیح میده از بس که کم هست هر کسی به اندازه یک ذره خیر انجام داده یعنی کوچکترین خیری کرده حتی که به اندازه نصف خرما در راه خدا صرف کرده نصف خرما خیلی کم هست یراهو اونجا می بیند در آخرت که من این کار را کردم و من عمل مثقال ذره هر کسی عمل میکند به اندازه یک ذره بدی ولو اینکه در حد یک کلمه هست یاره هو ان رحم می بیند، پس انسان موازب اعمالش باشد، موازب گفتارش باشد، موازب اقوالش باشد. هر که از دهانش خارج میشه انسان نباید بگوید. خوب بهتر انسان.